بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین و صل الله علا سهید و رسول الله و آله طیبین و طاهرین و محسومین اللهم ارحمنا و رحمت و کیار از تو که در نوع شهاران به ترتیب حضورت هجاری مرموم شیخ انصاری مکاسب و محرمه رو در نوع چهاران مکاسبی است امور که خودش بی حرام حرامه عرض اجرد در مقابل اونها هم حرام خواهد بود و باطل از که این تقسیم خماسی در حقیقه پنج نمو شده برای اولین بار در کلام شرایع آمده تا که من خبر دارم در کلام شرایع پنج قسم کرده و بعدها هم علمای ما همون راه رفتن شیخ و هم همون راه رفتن در مقاسب محبه هم پنج قسم مرحوم ساحل و شرایع رو او اینکه شیخ یک کمی مرتب شده مرحوم ساحل و شرایع عدد و مرتب نیست اجمالا نوشته اما مرحوم شیخ اونها رو عدد داده در بخش مثلا چهارونش بخش اولش نجاساته مثلا مرحوم ساحل و سا... یک دو دوتا جنوشتی یکی نه همه یکی ای. ال اولا مسئله دن بون یکی بعد مسئله پس مالای و که بس اعانه برای اسم ایتا. بعد مسئله چهارون الان ما چهارون هستیم نوع چهارون مرموم حساب وسائل عمل خاضر اینجا بودیم کل عملن حرام اخذ ادرات علی حرام این قاعده و از که این قاعده سابق داره نه که نداره من توضیح چون بیم دیگه تکرار بکنم به این عنوان کلی الان ما نداریم این عنوان الا تهجدي در کتاب روایت فضل احود هیچ چیز دیگه‌ای هم دارین ان حلال و هرمن شیئا حرم ما نداریم این رو اهل سنت دارن و چند تا طولانی به همین بود و تاریخش رو پی گفته شده و از همین که مناقشات دارن ما کلاً او رو نداریم اما این مطلب که کل شیءن حرام لایزو اضرل اوج این در فکر ما آمد وقتی که روایت روشنی نداره در فن ما اولین بار هم تعصوف به مرحوم مقنه شیخ محیی تعصوف شیخ صدوق نیا چون اصلا در این روایت معتبر این تعبیر رو نداریم دقت بکن تاریخ این مسائل اهل سنت دارن اهل سنت دارن هم حدیث دارن و هم در حدیث مناقشه کردن و هم در کتبشون آمده. سرشان بیشتر اینه که یکی دوتا تا حرام رو دیدن که مثلا اصل اجاز داره جایست نیست بقیه رو قیاتن یکی کلو نجتن داره جزو به اون یکی کلو حرامن داره جزو اصل اجازه علیه کنید دوتا عنوانه ما هر دو عنوان رو داریم اما در روایات ما نهانده لذا شیخ صدوق هم نده این سره این چقدر شیخ صدوق در چرا شیخ صدوق هم نداره. اما در توحفل اغول هست شیخ صدوق هم حدیث و حفل اغول رو اعتما اما این در مذهب بغداد جا افتاد کل نجسه لایزبه و کل حرامن لایزبه اصل حجته در عبارات مقنعه شیخ مفیل آورده نهایی شیخ طوسی آورده بعدا این از ما رواش شده کرد این همون است که علامه ادای اجماع کلمه اینا تمام شرح تاریخی رو اهل سنت ندارن کل نجسه لایزبه اون ندارن اما اهل سنت تصریح میکنن یکی دو تا نجسه رسول الله گفت و, و بقیه بکن. در روایات ما هم روی که الان موجوده ما نداریم کلو حرامنم داری زوبه اولای از احضور از این هم به عنوان نداریم توی حدیث تعفل تو اقول داریم تو حدیث احل سنت اینالله الله حرم شیعن حرم سمنه داریم لیکن معروف نیست معروف در مصادر اهل سنت اینالله اله حرم اکل شیعن حرم سمنه من این توضیحاتی که مفصل گفتن، اگر خب در ذهن واقعتون باشه. من هم مثال بسه جواب شرایطی که داد که کل ماه و حرامون لای جوزل بی و لای جوزل اجتالی. آشنست مطلب تایی خوند سال. سه به مکان سر مربوط میشه حتی جواب. این سال من دلی بس شیر از جواهر هر بگیدی. جواب هر شد دلی مفصل هم شد داده هنوز نه با مفصلی از شیکان سری. لکه شیخ انصاری کاری که کرد آمد این محرمه هاست و به حساب حروف هجایی گذاشت و شماره گذاری مثلا غینا هم جید، جید، غیبت هم یکی که یکی غیبت سه سبب المومن رشده به این ترتیب ایشان از مسئله تو تاسعه در شماره گذاری سبب المومنین حرامون که جمعه این عنوان سین چون رشده قبلی بود شد، تو حرف سین اندل. مسئله سبل مؤمنین گوه بوده به لعدلت الاروهی که ایتابه برمسارس ما خبتیم همیشه مختصری از کتاب مرحوم شیخ رو یه اجمالا نگاه میکنیم تا بعد تفاصیل و اگر ما اشکال کلی بر کارهای شیخ باشه بعد از تفصیل میگریم به عبرات هم لعنه او ظلمون ایزاون لعظلالون اگر ظلم گفته بهاید ندیجه چیز بگم به اصلاح حکم عقلی رو هم درست کنیم و ایزاء و اذلال در باب اذلال هر تا ما داریم چند سند صحیح هم دار صحیحه ام هست ان الله از امام صادق علیه السلام الله رخ خصل للمؤمن في كل شيء ولا يرخس له ان يذل نفسه چی واسه ده خب در ایشان متعرض روایات شدن از آیات تنصب نکردند در کتاب شیخ فتی رواهت عبی بسیر عبی جعفن علیه السلام آقا رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم سباب المؤمن فسوق و قطاله و کفرون ظاهرن سباب احتمال داره باب سلسی مجرد باشه احتمال هم داره که هم سباب و هم قطال مصدر دو باب مفاعله باشه یه اصطلاحی دارم در سرکر مصدر اول مفاعله میگه دوم رو فعال سوم رو فعال و هم فعال هم نهاری شده اما این اصطلاح میشه مصدر دوم با مفاعله سبب از اون مصدر باشه و خود به لحاظ قسال رو و عقل و لهنهی معصیتون و حرمت و مالی که حرمت دنه از احادیث معروف ان رسول اللهی که ان شاء الله یه مقداری که چون خیلی طول نکردیم در کاری میکنیم روایت اهل بیت رو بخونیم تو این مسئله ان و در موایت رفی رویت سکونی عن عبی عبدالله علیه السلام قال, قال رسول الله سباب المؤمن که المشرف علال حلکه البته در کتاب سکونی اونی که الان ما داریم از کتاب کافی اینها که اینجا همین سباب المؤمنه بعضی هم کش بعضی هم ش... نشه سباب المؤمن کش شرف علال حلکه بعضی هم مشرق یاره که المشرف را مشرف نگار مشرف رو کنیم مشرف را. بعضی از نسخی کافی اینجور نهر شده از فرق این باید در میان اهل سنت موجوده اینشالله تعالی ما هم به لحاظ تاریخی یا به لحاظ نکات فنی حدیث شناسی بعد از مطالبیس که گفته نشده اینشالله در شرق این حدیث بعد عرض می در متون عامه این حدیث به عبدالله پسر امرعاست نسبت داده شده توضیحات می شود اینشالله اونجا عرض می کنم امر کردن به خلاف ادعای جر زیاسی نداشت، اهل به وصول رسول الله. اهل این بود خیلی هم طول بود این حوالی مثلا کلا دروت. حالا شل شفت دارد. و اهل نویشان هم بود در سفری که در سال هشتم هجری به عنوان حاکم مکه رفتن خدمت رسول الله، ایشون هم آوا شرکت 15 سالش بود. 15 سال خورده بود. پیغمبر یک توصیه هایی به والی مکه از مکه عبدالنوسی کرد. یشون کنار زرق شد. شوهر که از اونجا نوشتن کن نوشتن براش بود. جوان هم بود، مردی بود، نوجوان بود. شوهر که بعد مجموعه هزار هزار و خورده هدیت جامعه ترسوند بود از صدیقه تو صادره. یه یه چندی داره که ما توی دادی صبرم. در مقابل اینها، امیرالمومنین از صدیقه تو جامعه. اون صدیقه صادره مال عبدالله سر اعراءس و جامعه مال امیرالمومنین سالماله. این صحیفه صادره چرحی داره اجمالش ده فقط من صادرهن حل کردم بزرگان حدیث مثل بخاری مثل مسلم مثل ابن حرج اشکاراتی دارن صحیفه را قبول نکردن اما باز هم ائمه شهرشون مثل احمد نخمند مثل نسائی مثل ترمذی از بزرگانش را قبول کردن این صحیفه صادره معاصر امام صادقه از زمان امام صادقه و امام باقر اواخر ایام امام باقر این صحیفه مطرح شد به نام شریف عبدالله آه. پسر عمرو عاص این از اون روایات عبدالله پسر عمرو این اجمال هست ان بعد توضیحات رو ارزم می‌کنم در متن دو دوم آمده فرضاً از عبدالله پسر عمرو صاب المؤمن صد باب نیامده صاب المؤمن کلمشذ علی الهلک آمده و در برخی از واژه‌شر دیگری ساب موتا این کلمه یه المومد الموتا آمده بایدشانشون ساب الموتا کلمش رو غلال حرکه نه ساب المومد و چون یک لطایفی در اینجا هست بعد من الان فقط اشاره آوره می کنم بعد این ساله در توضیح رو عرض می کنم در کتب اهل سنت یک قسم برهان صب موتا هم دارن. که اصلا موطا رو صب نگن. هرگز صب المومن. المومن. در مصادر ما این نیامده. این حالا اجمالش رو تعریفش عرض می‌کنم. تو مصادر ما تو این روایاتی که ما داریم با عنوان صب الموطا نداریم. مثلا با هم به عنوان در این که قرآزاده کده به با عنوان باقی سبل موتا نداری اما دارن اهل سنت که غیر از سبل مومه و غیر از سب و غیر از خوش و غیر از به حساب وقیعه الفاظ مختلفی که اینجا لحظ میکنن عنوانی هم به عنوان سبل موتا دارن چون مخصوصا میدونید در زمان که تازه مسلمان بودن ادهی حالا به یکیز که بدو دیراز بگم مثلا که پدر با مشرق بوده. مطالع این بوده الفاظ زشت چون مشک هم که بودن میگه به همین مناظره الفاظ زشت داره برتا که به زنده هم بخوره اخه این گه منشاء میشه که اون طرف هم که مسلمان بود پدر طور بود یه فوش دیگه به این اندازه میشد پدرش احراش میکنه لذا اون صب الموتها راجع خودش عنوان پیدا و برای من تعجب که چرا این عنوان صب موتها در روایات اهل بیت نیامده است یه توضیحی هم انشاءالله ارزم میکنم این که این قصه سیاسی و اجتماعی این مسائل رو بعد ارزم میکنم علایه حاله این روایتی که اینجا آمده این روایت سکونی انعبی عبدالله علیه السلام و قال آل رسول الله ساب بالمؤمن سباب بالمؤمن کلمشرف علال حلکه اگر این نسخه درست باشه اونی که الان در مسادر آمه هست از عبدالله پسر همراه من قرار از خیلی ستا عبدالله که خیلی معثرم در حدیث اهل سنت فوق العادمی سنتای معثرم عبدالله بن عباس و عبدالله بن عمر بن خطاب و عبدالله ابن عمر آس عبادله خودشون سلاثه که خیلی معروفه همه ای اینها عمراشون کوچیک بوده از همه شون عبدالله بن عباسه گفت شده در وقت رفاق رسوله ده سال یا ده سال داشته که اصلا نوشتن نداشته اون رسول نوشتن نوشتار نداشته. بعد از اون جناب عبدالله نه امرعاسته که اون حدود 17 سال و خورده ای وقتی وفات رسول الله از سال حساب بکنید، این شما خیلی حساب شوشنه ماه رمزان سال 8 هجرت شروع کرد به نوشتن از رسول الله وقت وقتی وفات رسول الله که ماه سفر سال 11 هجرته این مجموعه ایست که ایشون حدیث رسول الله نرشته الان تقریبا مهمترین مصدر کتابتی حدیث سهارو پیچه عرصمت همینه که همین مصدر هم از لحاظ به اصطلاح مثل بخاری قابل قبول نیست مثل بخاری در سند اشکال وساققی نداره اشکال دیگه داره من نموخواه متعرض بشانم جاش اینجا نیست و مسلم هم این رواست قبول نکرده یعنی کتاب رو این کتاب رو سیده ساده و ابن هست هم چند جا این قبول میکنه ابن هست همون کیکه اولش قبول میکنه چون ابن هست کلماتش مختلفه من برای آشنایی اگر آن ممایل مثلا یه صحیف از تو یه این صحیفه بدیه صحیفه سویز. این صحیفه عبدالله از هم نه امراث علیه حاله در اونجا هم دوتا آمده صاب المؤمن و صاب الموتا نه مؤمن و در روایت عامه ای لا تسبل لا هم دارند ما شورای اون لا تسبل موتا نداریم این با چطور در مکاتبه فنی فاریجی عرض کرده و در روایت عبیبسیان علی جزر علی الانسان قال جاء رجل منتمی الى رسول الله فقال له اوصني فکان بما اوصا لا تسب بود و تک تسب و علی عذابته البته اینجا در کتاب وسائل جزء دیگه چاپ شده خود مستر هم جزید آن به بعد وقتی خوندن حدیث عزیز. و وشی روایت ابن الحجاج مراد عبدالرحمن ابن الحجاجه اما ابن الحسن علیه السلام مراد مصر جعفر سلام الله علیه فی رجله میرد فسابان خوب دقت میگو کنید چون بعدیشن خیلی جیبیاد ما در کلمات اهل سنه خوب در روایاتشون این فعلی رو که از طرفینه غالبا از باب باب افتعال آورده. المستبان تعبیرش المستبان نه المستبان نه مستبا بخون. در مصادر عام المستبان اسم فاعل از استبه افتعال صبه. این در مصادر اهل عامه همین آمده البادی من همان از آمده اما المستبان در این در کتاب کنزور آمازه این دیگه چاک مستبان میشه بمیشه نون رو تصوی داده ملوم نوحاق بگید نون تصویی ظرف اون حدیث المستبان المستبان یعنی اقتعال باب سبه در روایات ما تصاف بدانیم باب تفاولش آمده به قصد و این احتمال داره به خاطر گذشت زمان باشه. این توضیحات رو در بحثای لغوی مفصلن عرض کردم جاش چون ممکن بوده در یک زمان یک فیل که میخواستن به یک معنی رو رسن به یک باب میبردم زمان دیگه همون فعل به باب دیگه میبردم این هست در لغت عرم مثلا در زمان الله اگر میخواستن بگن کسی مزرده باب مفائله میبردم زار رهو در تمام قرآن زار ر اما در زمان امام ساده باب اطعال موزن اذر ضربه دویی بابشه عرض این توضیحاتی که من در بحثای لغوی و غیر لغوی در زهل لازرار هم اونجا سابقا متعرض شدیم در احتمال داره که در زمان رسول الله باب استبه رو به کار می بردن و ها مثلا در قرن دوم هم یا در قرن دوم باب تفاعله رو به کار می بردن. فی رجلن یکس قاله از بادی ما از اون بیشتر ظلم کرده و وزروه علا صاحبه مالم یعتذر الان مظلوم در عبارت ما این طوره مالم یعتذر الان مظلوم اینشالا میخونی در روایات اهل سنت المستبانه مالم یعتده داره به جای یعتذر خیلی فرق زیاده به جای مالام یه هزار مالام یه هزار آمده ره نداره، اونم دوله. انشالله مباحث حدیث شناسی چون خیلی زرایت ولادت و زرایت، یادداشت ما الان در اینجا در مقداریش مراقب شیخ نوشتن فقط مطرح میشه. چون انصافاً مراقب شیخ کلّ در مباحث حدیثی که در اینجا چه در توحارالصوم صلاهی دوایی که ایشون دارن کلّ خیلی وارد نمیشن و حتی خیلی جاهایشون استی آور نمیشن. من چند دفعه از کردم. مقایستن بین شیخ و صاحب جواهر صاحب جواهر استیابش خیلی خوبه می کنم منابشات سندی یا محطی نیکنه اما انصافش تقریبا میشه بختمام هر سهرباق رو میاره یکی از خوبی های صاحب جواهر اینه شیخ نه استیاب هم نمیکنه مقدرشو میاد بعد مرحوم شیخ عبارت رو در ناصره که داشتن اینجور و وزروهو علا صاحبه اگه شونگید وزر بو اگر بردم وزر بادی یعنی چه علا صاحبه به عكس بادی چیزی که اول شروع کرده بر عكس میخوام بگم اون طرف مقابل وزرش بر بادیه ولی شونگید بر مرکز زمایر اختشاج دور رو. مرلزا روشنی نیست مرجع زمان و یمکل بختا من الراوی خدا رحمت کنه فرمان شهر خو یعنی خطا از خود ایشانه اصلا روایت این نیست اصلا ایشون از مسئله فقهی از کلام معروف شیخ شواهد ما حاکیست که مرموم شیخ هنسا ایک تاخانه بسیار کوچکی داشته موظم نقلیشون عدل حکایت این هم میگه از ارساقه الاس که شما یعنی کمپیتر و ممکیتر از خیلی واحد مراجعه میفرمین شیخ با این عظمتش شیخ واقعا فکر زیاد کرده اما مسادر رو فکرشون نبوده و غالبا عدل حکایت غالبا عدل حکایت البته مرمومه های خویی در این مص برای عبارات شیخ دادن و بعد در یک توضیح کردن عبارت رو آخرش هم فرمودن حجی نه اصلا مطلب اینجور نیست در کتاب حالا خیلی فهمیدم چرا اصلا توضیح عباراتی شیخ بده بعد جواب داد شیخ خود بعد میگه اصلا نسخه این نیست اون گفته یکی از ارامی روایت بوده غالبا از کلام غز فراست و اورهوا ان الله وجودن بعد اینه چنجوری خونده بوده وجودن نه وجودن یجر وجودن یچ وجود اون چند جور هر جور معنا کرده بوده خود <تصفح> وجود اون بحث نبوده همین جور خود بوده هلبه وجودو بحثو به هر کمون برای اینکه معنیش شده دایره بر آدم یه اباظه غلط بیاره و مخفیو بکنه از کردم روایت از حدیث اینه و وزروه و وزرو صاحبی علی حالا ایشون کتاب شرد بوده نوشته و وزروه علا صاحبه و غیر مترج الذمیر اختشاشون و یوم چون من الراهی. نخل خطا از خودشون در وسایل مراجعه می در وسایلم حتی هم تا کرده از کردم احتمال شد وسایلم خدمتیشون نبوده علاقه کایت بله این هیچ مشکل نداره بله روایت شرح میخواد اون بحث دیگر دید. این که اگر دو نفر شروع کردن به سب اونی که اول شروع کرده این هزلمه چرا؟ چون اون شروع کرده و بعدم پرد مقابل به جواب داده یعنی هم اعانه بر اسم کرده هم گناه هم داده. این ازلمه اون بخیی زیلش مالمی اعتدار الالمظلوم این چی؟ شیخ مرمای کده بر مراد انه مثل وزر صاحبی علم این که هست این خود روایتی البته مرموم آقایی روانی فرمودن و وزرهو علا صاحبه علا احتمال فعل باشه فعل مالی علا یعلو یعنی و وزرهو یعلو صاحبه یعنی وزرش فائد یک <تصفيق> <تصف> <تصف> مثلا ایشان تاکید رو توجیه بکنن، خیلی تا جواب داره یه یعنی گفته غلط سوی انسان بیاره غلط، درخشان نوشته یی نصف غلطه، وقتی ما رو میگم نوشته، توجیه گفته اینه علامت پیگشت. وگرنه به من صرف وقت رو خیلی، اگر این آیین چیز داره نمیلیم، اصلا انسان وقت نشده. نه، ولی می غلطه، در کتاب آمده معلومه، مصدر معلومه، در وسایل آمده، وسایل از کافی نرفته، در کافی موجوده، بالا، بعد بله خیلی تعجب آوره برای ماها ها اصلا نمیفهمیم این یعنی چی مثلا بگه ولد علا یعنی فعلن فعل ماضی از علا یعل یعنی رزوه یعل صاحبه اینجوری بخون نه علا صاحب ای به جربونه و رزوه ادا یعنی ارتقاء ارتقاء علا صاحب این چیز خیلی عجیبه خیلی من که فنا مثلا نبی بوده و چرا اینجور بحث داره میکنن بله مرحو میشه ولی مراد این ما باید جداگانه از این با توضیح بدیم اولا انکر در یک مشکلی دارم بزرگان ما که این بیار مشکل نیست به یک معنای توضیحش دیگه مبناشون این بوده نه اینکه توجه داشته باشه مشکل اولا باید میادن متن روشن می کردن مالم یعذر مضمه که در متون ما آمده یا مالم یعذره <تصفيق> ها این ظاهرا همون باید باشه من در کافی نگاه کردم که در سبب هست باب سفح هست تو باب سفح سفح اشاره کرد تو باب سباب که من مراجعه کردم که لمیت تذر تو باب سبب سبابش اونجاست اما باب سفر رو دیدم اما مراجعه نکردم ان مثل به ذو صاحب علی ایخا یا فصب من غیر همین و خلف فانسایشی اون خزع تذر الالمظلوم ببینید ایشون به متن تذره گرفت میشه انصد بیده ایقایی یافستد برای منال غزرین ما یه اعتذار رو مثل محکوم غایر گرفته. یعنی اگر فزار کرد هم گناه خودش خواهد میشه هم گناه طرف مقابل آیا باقیم مطلب اینه اینا نقطه هایی من کلارم در این برس ها خیلی صحبت کردیم که ما با اول مطن حدیث و مشخص رو باییم در نوبته به المرال برکیم اول مطن مشخص بشه نسخ مردم رس بشه بعد این تا اینجا بعدی از روایاتی رو که مرحوم شیخ شیخ انساری از کتاب که مسادری بود بعد واده بحث تحریق سب میچن چون این هم هست که اصلا سب یعنی چی من جمعه مخصوصا بحث بسیار معروبی که الان مفرحه که اینجا رو در دورانه مفرح میکنیم آیا با سب یکی یا دو تا؟ اما مشکلی من هر که از این خیلی دقت بکنه کلام تبیان شرعی طولانی الان تمام این اشکالاتی که اهل سنت ما کردن در طول تاریخ اشکالات مختلفی به بریت و, و الله تعالی و مرتضیه متوجه ماشاءالله همه اونها قابل جوابه اشکالی که الان خیلی چسبیدن و ما به به صابر که صبر و معنی لعن گرفتن الان اشکال بزرگی شن. خودشان ها فهمیده نوست تمام اشخالات قابل جواب اون چیره که الان روش خیلی دارن مسئله سب به صحابه بنابراین که شما لاقل اولا ما کلمه سب رو داریم ایشونه من روازش عرض می کنم روازت واحده یه هست متاسفانه و جای دیگه هم در رجال کشیه سندش هم بد نیست که وقتی به امام سازه یا شور منباقه راجی به شیفت که این صحبت می شه. که ما فرانه نسبه نصبه نه نلعنه همان تأبیر به سب شده جایی دیگه من به قدر نهیدم به حضر علم قدر نمیدونه سنیا خیلی ما محلوکای مانند و نه رو من معنا یا من اصحابنا به سب به همان به سب وارد شده و ازا در بقیه جهات ها به لعن وارد شده حالا این خودش بحثیت که آیا سب با لعن یکی یا دوتاست هم توی روایت آمه این مطلب وارد شده هم که بحث ما اینشالله عرض می کنم و یک مقداری هم اینشالله توضیح میدم که کلمه سبل موتارو یکیش هم همین بود یعنی جریان که بعد شهادت همیر مؤمنی معایست هر ایک از سب دعیه نه لحب رو در مدینه رائع بکنه اینشالله توضیحاتش رو بعد عرض می کنم. این مسئله که فرق بین سب با لح سر با شرد با خوب خوب شمنال خوب این نه این ها دیشتی انشالا من رو میشه من روشه به همین مقدار اجمالی اختفاق کردم البته این مقنی سرنی که اگر روایات ما فقط توش عنوان سر باشه اگر عنوان دیگه باید باشه باید اونا هم تحقیق جدازانه بشه در جامعه مقاسه تحمیده از مایست از این هسته بود و فی کلام بعض این آخر این نصده و من و واحد و فی کلام سالسه این کلام سالس مختصری تقریب مختلفی سید جامعه در مختلف کرامه مرحوم سیده آمیلی پرمزه سر انتصف شخص به ماهو ازراه ازراه خودشان نصد این شابه عرض می کنیم خود کلمه سر در اینکه که از چیست و اصل این کلمه چیزی این رو گذاشیم برای بعد اینشالله توضیحات می خیلط خلوط نقص کل مایوج ملعظام و خیلطا ایشون میگه قرض هم جده سبه مثلا گوه نسجون به یه چطی یا زانی با این که این بناشون این که یه حد قرض داره به زارم یه محسنات یا رجلی قرض غیر از سبه ایشون میگه سب شامل اونم میشه ون حقیر و الوزی و الکل و الکاخر و المرتب و تعبیر به این من بلا الله مثلا یک کسی عجزم جزام داره یا عبرس پی سی مرز پی سی داره معلوم نیست با عبرس اینا بعد سمت ظاهر از این کلمه سمت ظاهر این مقدمه از چون در اینجا نوشتونه که درست یه مقدمه است که معلوم شیخ تمهید میکنه اول آیا نسبت بین سب المؤمن و حیوث المؤمن چیه ایشون میگه ظاهرن لایو اصبر آفیس سب مواجه هست المسبوع. این داره مقدمه میکنه برای اینکه به اصطلاح چیز باشه و اول از همه نسبتو بین هو و بین غیدا اومون حالا حالا اینم خواهد خواست که استاد تبایونه یا اومون منرچه جداگان بحث میکنه وقتی که نسبت عموم منرچ شد یک مشکل دیگری که پیش اگر یک یه هم صد بود هم یه بود دو تا عقاب داره یا نه احداها و زکه در آخر میشه ایشون ظاهرا تعدد عقاب رو گرفته. این تا اینجا به یعنی چون مرمون شیفه انساری عنوان نداره به عنوان بحث نداره پس بحث اول عدله و حرمت سب بود بحث دوم سمه انه المرجعت صد تعریف سب بود بحث سوم بیان نسبت بین سب المومن و غیبت المومن بود مسئله چهارم سمه انهو یستدنا بعد موارد استثناء که آیا در موارد این سبب مؤمن جاییده این بحث چهارم ایشون اگر تعدد این اقام همینه بحث بگیریم چهارم ایش این پنجام ایشون بحث پنجام یستثنا من المؤمن المتظاهر و اینجا مظاهر میشه المتظاهر رو به پس چون در بحث قیبت خواهد آمون نور این در این استثناء که آیا متظاهر به انسان میتونه سبب کنه یا نه آیا شرایط همه مروح هست یا نه؟ این هم برس کرده. پس استثناء اول متظاهر به فسر ارز کردیم اینشالله ارز می کنم ما در باب متظاهر به فسر نداریم اما ایشون از باب غیبت آورده. و یستثنا منهو المتده ایزم اون بشینه کسانی که دنبال بدعتم و کار خلاف شر رو انجام می دن به اسم شر آو... بردی از غبارت داره که بگینا فهمش بدین این سب... سب این یکی بر بله این مشکل اینه این روایت اینه که میخوان ان شاء الله تعالی ازانید جو خصوصیتش اداره ای تو اهل البدع من بعدی فاظهر البراءت منهم این اشکال نداره بگه ما از اینا نیستیم این خط خب منحره و اکثر رو خط بده این خیلی مشکله که الفاظ زش مثلا و بعد بل قول فیهم وَلْوَقِعَةِ فِي فی، وَلْقُولِ فِيهِم وَلْوَقِعِهِ وقیه این واضح شده این در متعرض احوالونا شدن و حدیبت کستن لَبَاهِتُوهُم این هم احتمال داده شده که احتمال داده بلیه میدونم از بسیاره این که حتی نسبت های دروغ بینها ببینیم آده که این اهل بزه ما پرست بگیم ما خبر دار میخواستم ای ای بله این جمعه نهرات رو بله ما نوزی پول میشه میخواستم این جرد ها... درست نبود. یعنی یک نسبت دروغ به اینها از صلاحی ها ما واقعیت رو نداره رباه تو یعنی مطلب باطله بهتانه درگر دروغی افعال زشت. این آقا ما خبر داریم در کنونجا کاره عجبه کرده که دروغ هم هست. لیکن ظاهرن باهتوه هم این شما خواهد ما این معنا باشه احتمال داره انسوه هم الى نه باهتوه هم شما دروغ به اینها بگیم بگیم اینها به اسلام بختان زدن این نیست نه اینکه که رو با هم دیگه فرد بگذاره باهتوه هم گاهی به این معنا که حتی مطالب دروغ رو به ایشان نسبت بدیم برای اینکه آورین ها رو ببریم و اینکه خودشان دوید واقعیت نداره های حاله این روایت باید با جداگانه خونده بشه بالا یا مفقود کنیم میشه با همین صفر این سفر اون حاگیر صفر بود چون ظاهرا من راه در حدیث و بعد کامل میخونید شنیدم هستن من فقط می‌خواستم الان اشاره بکنم پس استثناء دوم اهل بدعت استثنای استثناء سوم اگر فرص کنیشون گفته و یوم که نهی استس ما منداله ما اداله نمیده از سر مصبوب. مثلا فرص کنید یک کسی مثلا رفیقش خیلی رفیقشه یا پسرشه بشین مثلا اولا همون که این ناره هست نمیشون اینم مثلا استثما بشه تقول قول الوالد برلده این مثلا و سید عبدی. این گاهی میشه اینم یک مقداری مرحوم سید متعرض مرحوم شکنساری متعرض این استثناءی سوم شدن و یه بحثی کردن که آیا این درست یا نه نتیجه نهایی هم که خودشون گرفتن نتیجه ششتر اینه که باید موردی حساب بکنی یکانی اوقات مثلا شاگر با استاد پسر نصاب پدر دروست نصاب دروست جوریه که اگر این تعاویر حساب این نوع استاد خودش هم میدونی خدا رحمه از اسم میدونیم این که از, از, از بود، ما می این نجات نجاتشون چطور بود. شینا در یک شهریتی از هم و خودش به عنوان افتخار نمیگه که ما در لذت نبودم آذیل هم بود. چون قایی اشغال می کرد آذیل می گفت من خرید و آذیل نیز صحبت می بعد آذیل اصلا چند دست کلمه شنیده است. ما می که چی می رو با خیلی ما تا کلمه هم می دهد. ما که هستا بگه یک که نرمه کردشون نجا بگیرم اینقدر اما ها زدشونه اماموشو میکنه ایش کل ولی اسم نمیخون برم حالا اگه اینقدر آزی دوست دو زدی این هرچی اشعال میکن اینقدر زدشونه اما گرده میشه بخواده اصلا کله تو حالا مرموم شیف میگه خب ممکنه اینجور باشه شایه از اصلا ناراحت نشی بلکه خوشحال هم بشی چون یک شریدار شنگگاره... میگه ما زمان ما اینطور نشه که کارها حل بشه یک طلبکار میشه اگر بخواد یک حل چارجی بوده یک مسئله شیخ راضی میگه این مساله مراجعه بکن خلاصه کلماتی بود که مرحوم شیخ راضی به سبب المؤمنین داشتن و کیفیت بحثی که در اینجا شده یک این مسئله سبب المؤمنین در مجموعه روایات اهل سنت و ما آمده و به خصوص روش زیاد بحث شده خود سب المؤمن در خدا آیات مبارکی بین این عنوان نرسیدیم این عنوان سب المؤمن در برابر کسانی اون اکنون بدون الله قيس الله عذبا بزرگ است رو داره اما راجع به مؤمن نداری اون چیزی که ممکن است راجع به سب از آیاتی کتاب صدا بشه که آخر درس می‌گذاریم بعد از روایات این که آیه مبارکه وجتن و قد ازور که به مطلق انواع گناه معنا شده به قیبت معنا شده به که معنا شده انواع مختلف چون زور خودش باید کجی کج. گفتارش س... به اصلاح کج تمام اینها گفته شده من اینجور به سمب مومن یکی هم خود اشتنه بو هم به معنای نیدیم که با موقع فعال از جمع یعنی شما در یک جانب باشید بول در یک جانه ما در فارسی به جاده بگیم کناره از گفته کجی کناره بگیریم این کناره تقریبا میشه گفت تفسیر لفظ لفظ اشتنه خود کنار با جانه و جنب یکیه از او باید انسان و رعایات ملدین یعودون المومنات المؤمنات هست به عنوان ایزا اما بیشتر به آیه مبارکه وشنبو بود این به اسم. اما راجع به روایات از کنم در این جهن تحت عنوان اناوین متعددی این بحث آمده و اناوینی که وارد شده زیاد بنده ممکن که نصداش امسومن ورد باشه بحتان هست، دیبت هست الوحیت فیلمومن هست الروایت عن المومن هست در کتاب وسائل مرموم سال وسائل این روایات رو در کتاب اشتره جمع آوری کرده این ایشون باب خاصی دو به نام علی اشره نداشتن ایشون به مناسبتی در باب حج از این چاپی که مال مرحوم ربانی دست من حج جلد هشتم ایشون در بحث کتاب الحج بعد از به اصطلاح به اصطلاح احکام به مناسبت آذاب سفر ال حج اح... احکام اه احکام دوا بحث شده است بعد از احکام دوا بین این مناسبت احکامال اشرا هم آورده هم نه ارز کردم سابقا هم ارز مرحوم کافی ابوابال اشرا در زید اصول آورده جد دوم اصول کافی آخرین بامش ابوابال اشرا است. اصول کافی با ابوابال اشرا تمام میشه ولی که این ابواب مسائل ابوابال رو در بین مسئله هج رو این در اول اصلاح هجی نتی میان پردرد این که بارد این ها بشن ابواب الاخلاق شواهدا مفصل آورده و خیلی هم همین انصافا قابل تایید میکنه که صددران و در اخلاقی باشه همین ابواب الاخلاق جواهر سال وسائل، بسیار واقعا شاهی سر خوبی این چند باب پشت سر همه که بیشتر کلماته مثلا حجر المؤمن کذب غیبت انواع و مثلا تحریم احسا اثرات مومن یکی چند باب سلو پنجا باب و تحریم سب مومن و ارضی و مالی و دمی. در باب بعدیش هم که باب سلو پنجا باشه باب و تحریم تقنه علمومن عل و از صد عنوان تقنه هم وردن. روایاتی که در اینجا عوردن همون جاییست که کلین باب سبا عورده کلینی هم باب سب عورده من صادقاً عرض کردم بعضی از هنوهین عباب و از کافی گرفته من بسید فردهایی داره صادقاً توضیحات شده هستیم یکی فکران نیمونم به عباب صد و هم بابا تحرین لعنه غیر به مستحقه که نصفه این توضیح هم من عرض کردم که بارم یکی از مزایای کتاب وسایل که در این حالا باید افراد آشنا بشن در این کتاب گالی بباد من با مثال مرونده ها مثلا بیست دار روایت در یک با, با بورده ها سال سال همون بیست در چهار با ورده ریس کرده باب ها ریس کرده این از اختصاصات وسائل در این مسادر حدیثی که ما داریم مثلا مقایسته در بین وافی و به های مجامیه سلاسه متحقیره بحار و وسائل و مثلا وافی هم وافی انابین بابش مثلا سی تا حدیث داره این باب بها یه هفته اشنا تحریف داد سا و سایم غالبا تقدیر می کنه که که بندی می از این جردش نافه برای مراجعه خیلی نافعه وقتی انسان باید چند باب با هم برید مثلا در همین جا ایشون یه روایتی رو از باب و به کافی عوضه در باب و سم باید صد و فنجان رو در کافی یه باب قرار برید ایشون دوبار قرار برید. چون یه نکته توش بوده به خاطر نکات ریز کرده، باب رو ریز کرده. لذا برای مراجعه خیلی بهتره این راهی رو که مرحوم صاحبش صاحب. یکی از اسرار این کتابه در طول تاریخ ما خیلی جا افتاد سهولت مراجعه داره به کتاب چون ریز کرده، هرگاه مثلا خطابه ریزی ریز رو ورده، اونجا در وافی البته جا دیگه هم داره یک جلدشینه. در وافی عناوین باب چنین که میگه روایات زیاد مورد احسان با تمام باب ببینید در دردش بخوره اما در کتاب وصالی نکته رو داره حالا بعد از سوزی این مطلب باب 158 وسائل رو مرحوم کلینی این باب صبر رو در عقواب ایمان ول کفر آورده شرحش نگون کنید در باب الاشنا آورده این نوکسنان دارم گادگیه این که ایا مثلا سبال معاملات ما تو ایمان و کفر بیاری یا تو احکام اش اشاره بیاری و شما تعجب بکنی چرا اینا همیشه اینطوری کشید میشه که بابا سید کوردی هم اساتید عربی ده اینا خود بابا من نه روش حساب کتاب بوده مثلا در بخاری این سباب معاملات تو باب تو ایمان بوده کلی تو باب ایمان بوده مثلا بخاری هم در کتاب ایمان آورده هم در کتاب آورده مسلم هم اینطور تو کتاب ایمان آورده ببینید دو تا از بزرگان اهل سنت تو کتاب ایمان آوردن چه به تو کتاب ایمان آورده اما صحابت‌هاش تو کتاب الاحاد آورده خود بخاری هم تو کتاب آورده آوردهش یکم عشه ده فقط اینطور شد یعنی معلوم اختیار این ابواب اینکه که این با در کجا این رو بیاره چون این مباحث گفته میشه من برای شما اصلا اینا قربوه وشویده اینطور نبوده که مثلا کسی کشمشی از کسی بینی پس مثل صاحب و صاحب وسائل تو ابواب العد در واقع ابواب رو ورده در کافی تو ابواب ایمان ورده مثلا بخاری که از صحیح یا و مسلم هم تو عد ورده هم تو ایمان ورده دیگه واژه بحث لازم من یک دو شنگیان دارید خود مراجعه بردنس. فقط برای اینکه تنبه پیدا حدیث شماره اول این باب رو که از همین اصول کافی مرحوم کلینی انقدر در حسابنا که از که 5 از مشایخ قم است ان احمد بن محمد بن یسای اشعری قومی که از اجلاس انل حسن بن محبوب شواهد تحقیمی ما نشون میده که این حدیث از کتاب ابن محبوب نسخه ای که در اختیار کلینی بوده بسیار نسخه صحیحه نسخه ایست که احمد اشعری از بزرگان به کوفه رفته یا با خودش به قم آورده این شرح هار کتاب و کتاب حسن محول در اون زمان مثل کتاب کافی در زمان ماست مثل که آن نسخه دو درستی هم هست این عبدالرحمن بن حجات که از اجلاست این موسف نجحفل سامالله علیه روشی به روایت عبدالرحمن بن موسف توضیحاتی موقع که جاش دیگه نیست بحثه خاص به جالیست این رجلین یا تسابان الان خوندین عبارات شیخ رو قال البادین همه ما زن هست کرد از این مطلب در میان عبارات اهل سنت هم هست این شما پردا عبارات اهل سنت این خودی اونجا اینطوره المستبان نه ایت سابان المستبان البادی من همه هستن در از حرمونی و وزرو و وزرو صاحبیه علی مالم یعتذر اینجا الان نسخه یعتذر و واضحیشو نار کردن که در نسخه کافی. لم دهم از صحيح تمام في الابد رسول الله